بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ما بعد بأن درس هذا درس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب إمام الترمذي كتاب شمائل إمام ترمذي رحمه الله وإسكانه فسيحة جناته نزهومين حديث هذا نزهومين حديث هذا حديث كدرين كتاب أبورد إمام الترمذي رحمه الله, الله ميقوياد حدثنا أحمد بن عبدها الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن بي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي قبل أن أرسل دوما قراجت ونكونا إن حديث أمات تولونيبوت در شماایل رسول الله صلی الله و سلم در وصف چهره و وصف تن و قامت رسول الله صلی الله و و رنگ پوستش مفصل اونجا اومده بود از وصف علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفتیم حدیث دو تا علت داشت ولی خب اون چیزی که در حدیث علی بن ابی طالب اومده رضی الله عنه در دیگر احادیث صحیح هم یاد شده یعنی تمامی اون چیزهایی که اومده در احادیث صحیح هم اومده هرچند که حدیثش دو تا گفتیم و ضعف داره علت اولش ضعفش ی قسمتش برمیگرده به عمر ابن عبدالله مولا غفره که ضعیفه. علت هم ابراهیم محمد هست. نبی علی بن ابی طالب که بعد از شهادت علی بن ابی طالب رضی الله عنه به دنیا اومده و شنیدنش از علی بن ابی طالب ثابت نیست و معلوم نیست که از کی شنیده. حالا شاید از صحابی دیگر شنیده باشه، شاید از تابعمان، تابعین احتمال داره که زیف باشه به خاطر همین حکم اسناد ضعیفه. حالا ضعف ما گفتیم. ضعف اطلاعت بر این نمیده که اون روایت صحیح نباشه اون روایت صحیح نباشه چون گفتیم فرق تفاوت بین ضعیف و موضوع موضوع قطعیت در دروغ بودنش هر چنکه شاید سخن درست باشه شاید از حوادث دیگه گرفته شده باشه ولیکن اون کسی که داره به من نقد میکنه دروغگو است ما از دروغ, دروغ رو هیچ روایتی را رو نمیپذینیم حتی اگر اون روایت آیه قرآن باشه ازش نمیپذیریم بس این حدیث من گفتیم ضعفش يسير عندنا اون چیزی که در این حدیث اومده بعد دیگر احادیث هم اومده اینجا یک قسمتی از حدیث رو میاره در بحث نشانه نبوت که در اون حدیث قبلی که یاد شده که هم اومده که علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه بین اکاتيفه خاتم النبوه میانه دو تا رسول الله صلی الله علیه و سلم کتف رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود نشانه نبوت که وصف اون نشانه نبوت که قده سفید رنگ مایل به قرمزی، اندازه تخم کبوتر یا تخم کبوتر و هو خاتم النبی. که رسول الله نبودات بهاش خاتمي أفته. بسواهين حديث. الإمام الترمزي رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة مجيبات. حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا أبو عاصم. قال حدثنا عزرة بن ثابت. قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري. قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو زيد أدنوا مني فامسح ظهري فمسحت ظهره. فوقعت أصابعي على الخاتم، فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ علبا مجه أبو زيد، أبو زيد عمرو بن أخطابي عنصاري. علبا مجه قلت وما الخاتم؟ الخاتم هش هي النشانه هش قال شعارات مجتمعات. یک موهایی هست که کنار هم دیگه جمع شده. خب، الله این حدیثو بررسی می کنیم، می بینیم که با دیگر حدیث های تاریخی داره نداره. این حدیث رو وقت کنار هم دیگه بذاریم تا بدونیم این نشانه چی بوده و آیا قده هست، آیا موه هست چه شکلیه چی هست، کل اون اوصافی که صحابه داشتن رو کنار هم دیگه باد بذاریم تا ان الله بتونیم نتیجه گیری بکنیم. اینجا راوی این حدیث ابو زیده، عمرو بن از الانصار رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه و با کنیه صداش میزنه میگه ابا زید. یا ابا زید. یک توقیری درش هست. احترامی درش هست. صدا زدن با اسم کوچه خصوصاً شخصی که بچه و خانواده داره برای خودش، با صداش زدن محمد فلان، احمد یک کوچیکی درش هست. یک نوع کم شمردن توش هست. ولی وقتی که با کنیه صدا زده بشه، یک توقیر. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله بچه کوچک روش کنیه فلان پدر فلانی، یعنی برای خودش یک پدریه مردیه یعنی. یک اجلال، یک توقیری درش هست، احترامی درش هست و این رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی گفتم چه بچه یا ابا عمر ما فعلنا لو غیر، بچی کوچیکی، یک گنجشکی فوت می‌کنه و شرحش مفصل دادم تو آدم مفرد که ما شاف میگه درسای زیادی تو این حدیث هست، که من نزدیک به 20 تا از درسای این حدیث را اونجا تو آدم مفرده یاد کردم. یک از درس‌ها همینه، نوع مخاطبه، نوع تعامل نوع ارتباط گرفتن با دیگران نوع صدا زدنشون توقیر و احترام طرف مقابل خیلی مهمه احترام طرف مقابل خب ادن و منی قسمت حدیث بیا نزدیک من بیا پیش من بیا کنار من یعنی خودتون رو جای عبو زید انصاری بذارید دلتون پر نمیشه رسول الله صلی الله علیه و داره بهش مگه اشرف و خلقا میگه بیا کنارم بیا پیشم رسول صلوات الله علیه و آله ایش میخواد یا بیشم اونم برای چی میخواد یاد پیشش سبحان الله یعنی علی حدیث که نرا احادیث دگاگر بذارید سان میگه ای کاش من ابو زید بودم از دعایی که رسول الله صلوات الله علیه و آله بهش میکنه از این نوع تأمولی که رسول الله صلوات الله علیه و آله درخواست تقاضایی که از ابو زید داره وقتی که میاد پیشش در روایت دیگر همیده نزد امام محمد در مسندش وقتی که نزدیکش میشه رسول الله صلوات الله علیه و آله دستش به سرش میکشه و دستی به ریشاش بعد دعایی براش میکنه دعایی برای یکی عبو زید عمرون اخرا انصاری یک دعای برایشون میکنه رضی الله عنه اونجا از رسول ساسم فرموین در دعایش به ابو زید اللهم جمله و عدم جماله اللهم جمله و عدم جماله مرا لا زیباش بو. و برایش پایدار نگهدارن این زیبایی رو براش نگهدار صد و خورد این سال اوم می یک ترکی هم تو صورتش نبوده که دیگه تو نیومده همون جوونیش حفظ میشه با برکت دعای رسول الله صلی الله و میکنه جوونی حفظ میشه یک سفید نمیکنه به خاطر برکت دست رسول الله صلی الله علیه و سلم به سرش و و این دعای رسول الله صلی الله در شان کی ابو زید گفته میخورید شما بودیم نه رسول الله صلی الله دست چه شرفی داشته صحابی که ان انتخاب بشه از مابقی یاران صل بعد بعد بیاد کنارش بشینه بعد و دستی به سرش بکشه و بریشاش رو که بگه اللهم مجمل، اللهم جمّله این دعا هم برای زیبایی معنوی هم, هم به زیبایی حسی هم اون زیبایی حسی از شکل و مظهرش و هم دعا ایمان الله مجمله خصوصا اون زیبایی ایمان و تقوا این رو داشته که براش درخواست دست این چه خاص گوزگینش بکنه براش دعای خاص از بین کل دعاهای دعای خاص براش گو چنین شروع کره این حدیث هم صحیحه هر دو تا حدیثی که الان داشته داریم صحیحه چین حدیثی که میخونی و چین اضافه ای که من از مصادم و احمد آوردم خب میاد دست رسول الله صلی الله علیه هم به سرش میگشه دعا هم براش میکنه بعد میگه بیا به رو نهام بکش حالا برای ماساژ دادن یا به خاطر اینکه از برکت تن رسول الله صلی الله علیه و آله برخوردار بشه یا اینکه به خاطر اینکه میدونسه کنجکاو میخواد اون نشانه نبوت را ببینه تا اینکه لمسش بکنه الله اعلم رسول الله صلی اللہ علیه میگه بیا دست به شنان بگشت خصوصاً الان داریم الان میاد در احادیث که صحابی مثلا میاد رسول الله صلی اللہ علیه که دنبال که اون نشانه نبوت رو ببینه و خودش و قرانش رو پایین میزنه میگه بیا ببین صحابه رضوان علیه هم کنشگاه بودن توی این مسائل میخواستن ببینن یعنی چی هست چی نیست خب میگه اومدمم؟ أبو زيد ودنه مني فمسح ظهري ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دسيب شون هم بكاش كمارا يقول فمسحت ظهره وما دم دسيبه شون هاو صلى الله عليه وسلم كاشيدا يقول فواقعت أصابعي على الخاتم أنقشتهم ما أدرو يه ونشانه ونشانه نبوات رابي عز أبو زيد تابعي البا ابن أحمر اللي يشكري يقول وما الخاتم يكشي نشانه مهر قال النب شعارات مجتمعات و در روایتی و حوله و یعنی اون مهر نبوت اون نشانه نبوت قده بوده که دوربرش مو بوده دستم اومد روی اون موهایی که دوربر اون نشانه نبوته که قبلا بس شده حالا خصوصا این تفسیر و این شرح با دیگر روایت ها که اومده تقویت میشه و واضح تر میشه با فایده کلامی غبطه رو آوردیم رفته به شان این صحابی و اون منکانه و جایگاهش که پیدا کردن خیلی چیزا هست انسان میتونه کسبش بکنه درسته که این دعا دعای دعا خاصی از رسول الله صلی الله علیه وسلم این دعا دعای دعا خاصی اللهم جمله و ادم جماله به ابو زید انصاری میگه رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی خب دعای دیگه هم داره رسول الله صلی الله علیه وسلم به عموم امت که از این دعا محروم نشن اگر بخواد برای دیگرانی که بعدا خواهند اومد میخان مساب و از این مزیت برخوردار بشن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعای دارن در شانه اون کسانی که از وقت خودشون میدن با حادیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرموین در دعایش ندر اللهم رایم سمع مقالتی فوعا و حفظا و ادعا چارتا چیزا ندر اللهم رایم ندره از خوشبختیه از از حسن و از خوشی و خوبیه بار خوش بگردان دان کن اون کسی که سخنان من را میشنوه نکن دعا به زیبایی و خوبیه شخصی که چی وقتشو میده به حادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندار الله را سمیع مقالتی بیاد حرف سخن رسول صلی وسلم را بشنوه فوعانها بشنوه و درکش بکنه بفهمه یعنی منظور رسول صلی اللہ عل و حفظها بعد حفظش بکنه بفهمه حفظش بکنه سپس عداش بکنه الا من لم يسمعون کسی که نشده الا حدیث سنوانی ترزینه رسول الله صلی وسلم برای این چنین شخصی این داره دعا میکنه بار الله زیباش ساز زیباش بساز یا الله بار الله خوشبختش بساز اون کسی که سخن مرون میشنبه صفیان من عينه رحمه الله میگوید ما من احد یطلب الحدیث الا وفي في نظره یه کسی نیست که بیاد دنبال حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مگر این زیوایی این خوشی تو صورتش تو میبینی این خوشی آثار سعادت خوشبختی تو صورتش میبینی کسی که چی؟ طالب حدیثه حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این است که انسان هنوز براش فرصت هست برای اینکه اگر فرصت مجالسته برای صلی نداشته از اون فضیلتهایی که اونهایی که باش مجالست داشتن محروم نشه میتونه کسبش بکنه از اون فرصتهایی که اونا داشتن اگر فرصت مجالست نداشته فرصت چیزهای دیگری هم بهش داده الله جل و علا که میتونه از اونها بهره ببره و هنوز وقت برای غنیمت هست میتونیم این ها را کسب بکنیم خب حدیث بی سی امام المذي رحمه الله ميقويات حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإن لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغدب مثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطه ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهامه على أن يغرس لهم نخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها بسيكمين حديثك إن جاء امام ترمزي رحمه الله ميريبا البنيها مسنادش تحسين ميكون در تخريجها حديث شمائل ترمزي رحمهم الله واجمعه در حاشیه شمالبانی شمال رحم الله میگه در سیرت مفصل این حدیث را به طور تمامش آوردم یعنی با اون توضیحاتی که داره اینجا خلاصه هست یک ای از حدیث سلمان فارسیه سلمان فارسی رضی الله عنه گفته شده که بیش از 300 سال عمر کرده از آتشکدهی با آتشکدهی دیگر از مجوسیان و زرتشتیان ایران میره برای تحقیق برای جستن دین و ایمان از سرزمین به سرزمین دیگر برای جوایی علم برای هدایت گشتن و هدایت شدن هجرت میکنه، سفر میکنه از پیش کشیشی، عالمی، روحیبی تا اینکه آخر میرسه به مدینه خیلی زحمت میکشه، تلاش میکنه برای دینش خیلی تلاش میکنه برای دینش و آخر عمرش بالاخره این شرف و لیاقت را پیدا میکنه که ایمان به خاتم النبیین بیاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم اختی که تو نیتت خوب باشه قصدت خوب باشه الله توفی بر قدم داری. همیشه من این حدیث رو میگم این دو تا حدیث خصوصا. را در کنار حدیث سلمان مهمه. بحث اخلاص بحث قدم گذاشتن. حدیث اولی، اون حدیثی که در شهیحینه، شخصی از شهر خودش میاد بیرون، بلی به شهر دیگری، به ملاقات دوستی از دوستانش فلّا. لاله دوستش داشت. برای الله دوستش داشت. خاطر ایمانش تقوایش. ارزش صاحب و رفیق با ایمان او، هم صحبت کی باشه میاد بیرون. الله جل وعلا اكرامش میکنه فرشته ای رو براش میفرسته کجا میری؟ و ارسل الله ملك فيما درجته یعنی جلو روش فرشته ای الله میفرسته کجا میری؟ میگه فلان شهر چون فرشتگان قدیمی ها به شکل انسان ها می اومدن به شکل مثلا جبرئیل که به شکل دحیای قلبی می مات حدیث درسه قبلی داشتیم اومد به شکل یک شخصی بهش گفت که کجا داریم؟ میگفت که فلان شهر دوستامی دوستام اونجا میرم ببینمش گفت که پولی داری امانتی داری میخوای بگیری گفت که نه لله فقط دوستش داره بعد بهش میگه اینی رسول الله الییک منم پیغمبر الهیم ام به سوی تو پیام آور الهی پیام الله رو به تو آوردم که چی که الله هم تو را دوست دارد چون طول الله دوستش داری نگید اینی لیاقت کی پیدا کرد وقتی که قدم برداشت من ایمان دارم به الله جل و علا ولی نماز میا مسجد نمیام خب چی ایمانیه میگه ایمان تو دل حجاب نمیپوشید خواهره حجاب نمیپوشه خب چی ایمانه که حجاب نمیپوشید تو ایمانت کجاست تو شکل تو قیافت ایمانی نیست من مؤمنم ولی نماز تو مسجد نیست خب ایمانت کجاست قدم بر نداشتی تو اون قدمی اگر تو برداشتی الله جل وعلا اکرامت میکنه این اکرامه وقتی نصیبش شد که قدم برداشت اومد بیرون از شهر اونجا هست که الله اکرامش میکنه فرشته براش میفرسته و این مجدگانی را بهش میده و این ارزش را بهش میده الله جل وعلا یادش داره میکنه و برایش فرشته میفرسته یعنی یک عمل کوچیکه ولی اون اخلاص چه اثری داشته در اون قدمها و اون زحمتی که داره میکشه انسان ارزش پیدا میکنه با اون عملی کوچک ولی خالصانه باشه برای الله جل و علا از جمله احادیث که در کنار این مهمه اون شخصی که 99 تن کشته بود بعد صدمی هم راهبی را میکشه، جاهلی را میکشه. ولی خب اهل عبادت بود چون فتوی نادروسی هم بهش میده راهی برای توبه نیست اونم میکشه بعد عالمی را میبینه ناکنید جویای علم الله جل چون میدونه این شخص جویای علم الله جل و علا جل و روشی میذاره عالمی تو باید حرکت بکنی باید زحمت بکشی تو نشاسی میخوای الله جل و علا برات درهای خیر و رحمت رو باز بکنه همینطوری هر هرچی خاصی بهت بده نه زحمت میخواد تلاش میخواد حسن علم حسن علم من مفصل پیرامون این مسئله در ماجرای موسی علیه السلام در سوره کف اونجا مفصل گفته شیخ عبد الرحمن سعیدی فواید خاصی داره حسن در این ماجرا در این زحمتی که ك... میکشه موسا با یوشع بلونون زمانی که میرن به ملاقات خضر علیهم همه صلاته وسلم هر ستا پیغمبره خسته میشن میرن ماهی رو گم میکنن برای چی؟ برای که علمی میره موسا علیه و السلام بیاموزه از کی از پیغمبره دیگر از خضر حالا هرچنک اختلاف در اینکه خضر پیغمبر بوده نبوده اونجا تو درسای از سوره کهف هست همینطوری نیست علم تو کسبش بکنی و علم بیاد در خونه تو بذاری نه تو باید بری قدم به طرفش برداری وقتی قدم برداشتی مثل همین شخصی که ستن را کشته بود آخرشی شد الله جل و علیه فرشتگان رحمت را براش میفرسته که آمرزیده زیده بشه با اون فرشتگان رحمت و الی آخر از اون قسط و داستان و که شما میدونید خب سلمان فارسیه جویای علم، جویای پیغمبر خاتم و الله اللهم جلال و يهودی تو توفیق را بهش میده که یهودی از یهودیان اون را بخره بیاره پیش تو نخلسانی هم کار میکرد به عنوان یک برده برده هم بیش نبود یک برده چه شرفی پیدا میکنه چه مکانتی پیدا میکنه الله اکبر الله جل و اعلی رنگ پوست نگاه نژاد تو عربی تو عجمی سلمان فارسی یا اهل فارس زمینه چیزی به اسم ایران نبود اون دوران معروف بود این سرزمین عجم زمین سرزمین امپراتوری فرس روم بود تو اروپا و این مابقی از حراق گرفته به جهت شرق به جهت شرق مشرق زمین اینا فرس بودن از هند، از پاکستان، از قبایلستان، از مغولستان و چین اینا همه جز فرس محاسب میشودن سرزمین فرس بود از اون تاجیکستان و ازبکستان و روسیه شو همه مشرق زمینن اینها سرزمین فرس بودن امپراتوری فرس بودن یک امپراتوری دیگرم داشت تیم غرب که امپراتوری روم بود اروپا بودن رومی ها بودن خب سلمان فارسیه گفتیم، یکی از ویژگه های دین ما دین ما نگاه نژاد نمی کنه، نگاه رنگ پوست و چهرت نمی دین ما دین ایمان، دین قلبه، دین پاکیه سلمان فارسی رضی الله عنه میاد نزد رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که میاد به مدینه، خب میشنفه از این پیغمبر از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده بود قبلا از اون علمایی که اونها را دیده بود از زرتشت و مجوس از نصارا و یهود شنیده بود از این پیغمبر و نشانهایی که این پیغمبر داره بر صدقش و بر اینکه خاتم النبیینه خب می‌خوام امتحان بکنم اون چیزی که الا شنیده چه از زرتشت چه از یهود چه از نصارا ها اون چیزایی که شنیده بود میخواد ببینه تو این پیغمبر هست یا نیست تا بفهمه این پیغمبر صادقه یا نه و خاتم النبیین هست یا نیست سفری سینی از رتب از السمريد درخت النخل تو یک سفره میذاره تو یک سینی ظرفی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و جلو بر رسول الله صلی اون علیه سینی رو اون سفره رو بهم میکنه جلو بر رسول الله صلی الله و وسلم یا سلمان ما هذا ان شي يا سلمان رتبه ثمره درخ النخل همه میدونن اخر خرما و رطب دیگه های میشناسن دیگه میبینن رسول الله صلی الله وسلم جنس اون صفر へ نمی‌پورسه. ما منظور این نیست کی این چنو نوع نه خب بازه که چیه؟ نه. چی اوردی؟ برای چی اوردی؟ اینه سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصدش اینه. سلمان هم میدونه مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیه. برای چی اوردی؟ هدفت چیه سلمان؟ فقال صدق سوالو فهمید؟ جوابم میده طبق اون سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم. صدقه است. برای تو و برای اصحاب صدقهٌ علیك و علی اصحاب برای تو و برای اصحابت. فقال ارفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش ميجي سفرهه وبلان كن در بعضه ذره وقت امده كرسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه ايش دا يسور ولي ما نيخورم خودش رسول الله صلى الله عليه وسلم يدس ميگشه ان عبارات ارفعها يعني ارفعها عني اجل ما بلان صدقه لا ناكل يعني ما بيغنبان عن صدقه نيخورم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ميجي قال فرفعها السفرهه بلندش میکنه، اون رتبی که اوردی بود را بلند میکنه. فجعه القدوی مثله فرداش هم همون کارو تکرار میکنه. میاره بازم، میاد سفره را میاره، بازم رسول الله صلی الله عليه وسلم بهش بگه ما هدایت اسلام، چی اوردی، برای چی اوردی، چی فقال هدیه لک نه این بار هدیه است رسول الله، این هدیه است، هدیه لک برای تو برای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت اولی چی بود؟ باصحابش گفت بخورید خودش نخورد. اجلی امام بلندش کنه اینجا گفت که چی؟ این هدیه از برای تو چون سه تا از نشانه های نبوت را میدونه یک این که صدقه نمیخوره اون پیغمبر دو هدیه قبول میکنه و سه هم نشانه ای از نشانه نبوت بر روی هست که حالا اون نشانه ها دنبالش که حالا هنوز نسید حالا این دوتا تحقیق شد این دوتا نشانه رو از نشانه های ختم نبوت مستاقیتش در اساس اسلام دید صدقه نخورد هدیه قبول کرد رسول الله صلی زمانی که میگه این هدیه هست، به اصحاب یارانش میگه فقرا رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب ابصوتو یعنی ابصوتایی که دستونو دراز کنید بفرمایید به سوال میگه بفرمایید و خودشم رسول الله صلی و از اون قضا میل میکنه زمانی که میان صحابه دور هم میشینن سلم میاد. میاد از باب کنشکاوی میاد از طرفشان چه پر رسول الله را ببینه ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلی الله علیه دو تا نشانه دیده بود اولا کنشکاوه که نشانه سومی رو بینه میاد کنار رسول الله صلی اللہ علیه زمانی که دید دستاشون همه بلند کردن اومدن که اون رتب ها رو میل بکنن اونجا هست که سلمان چشم می روی شانه رسول الله صلی اللہ علیه و اون نشانه نبوت رو می بینه خب اینجا سلمان ایمان میاره فاعمن به اینجا به رسول الله صلی سلم سلم سلمان ایمان میاره قصه اله خلاصه‌ای هست از ایمان سلمان و کَن لِلْیهود برد بود برای یهود فاشراه رسول الله صلی الله علیه سلم و سلم و کذا درهم رسول الله صلی الله علیه و با درهمی از نقره نگفته شده که چقدر نقره هست ولی خب رسول الله صلی برای آزاد کردن سلمان میاد هزینه میکنه از اصحابش را میطلبه که کمک بکنن برای آزاد کردن سلمان اون یهودی هم قیمت میذاره براش نگفته شده چقدر مقداری نقره نقدینگی پول و غیر از اون در کنارش در نخلستان اون یهودی بی, بی, بی ست یا گفته شده 300 تا نخل اونجا نهال نهال نهال نخل اونجا بکاره یعنی قیمت آزادیش کاشتن 200 یا 300 نهاله نخل با مقداری نقدینگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این هزینه رو تعمیم میکنه و سلمان رو میخره بعد رسول الله صلی هم برای خودش نقل سواییم داشت. دیگه میاد رسول الله صلی الله و سلم کمک میگیره چون کارش کشاورزی بود. یک کشاورزی بود. رسول الله صلی الله و سلم هر کسی که اهل فن بود، ازش کار میگیره. فهم کسی که حداد بود، آهنگر بود، در آهنگریش برای ساختن شمشیر و غیر اینم هم کشاورزه. میدونه چطور بکاره، کجا بکاره و چه فصلی بکاره. <تصفح> همه رو میدونست. با قدر همه رسول الله صلی الله و سلم از قلبش میخواد استفاده بکنه. سیصد خوردیم. سال سن داره و شهر به شهر رفته به خاطر اینکه دنبال اون پیغمبر خاتم النبی بوده کلی تجربه کسب کرده. خبره داره برای خودش، تجربه داره. خب بعد اینجا در حدیث اومده میگه فیعمل سلمان فی حتی تطعم میگه یعنی که سلمان اون نخلستان رو برای یهودی کاشت تا اینکه سمره بده. یعنی به جا برس اون نخلستان بعد رسول الله علیه و سلم میگه الله علیه و سلم دیگه ما در صلوات الله علیه و سلم, و سلم خودش نخلستانی هم برای خودش رسول الله صلی الله علیه با دست خودش. در کنوره و سلمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم یک آبادی را ایجاد نخل نخلستانی خودش رسول الله صلی الله علیه و نخلهایی را کاشت الا یک نخل اینجا یک فایده ای را می خواد بگه اینجا در این روایت اونم برکت دستان رسول الله صلی الله علیه و سلم به اثرش و کارش و معجزی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و وسلم نخل ها همون سال نخلی که رسول الله صلی الله علیه و کاشته بود تمامی اون نخل ها ثمره میدن الا یک نخل یک نخله عمر کاشته بود بعد از روایت تو ضعیف و مدکی یک نخل لا سلمان کاشته بود ولی ضعیفه این چیزی که اینجا این روایت داریم کامل بن تصحیح میکنه اینجا عمر رضی الله عنه نخله رو کاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نخله کی کاشته چی این قصه این نخله مروم خطا میگه من کاشته می رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم نخله رو میبره دوباره میکاره همون سال هم میده همون سال هم میده معجزه هست این به خاطر چیه دلگرمیه سلمان تابودن فرقش سلمان با رسول الله عليه الله و سلام تو ماهری به نخ کاشتن ولی برکت دست رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی دیگر است کلی تجربه کسب کرده دست و پنجه نرم با نخل و با کاشت و با زراعت و کشاورزی ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش برکته چیزی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم با دست خودش بکاره غیر اون چیزی که سلمان بکاره. کاره اون چیزی که رسول الله صلی الله و سلام میکاره همون سال ثمره میده چند تا مراجعه بود 4 اومدی بو 3 تا دووال میگشت خط شد با چندتا و چهار تا از معجزات رسول الله صلی الله علیه و الله جل وعلا چنین اکرام میکنه اکرام یکی از صوم و تزمله درس اکرام الله جل وعلا قدم برداشته الله هم داره تکریمش میکنه الله هم داره تکریمش میکنه کافی برای سلمان رضی الله عنه چشمش به دیدار رسول الله صلی الله علیه و شده شرفه لیاقته که الله جل وعلا به اجداد و قابلش دونسته غیر از اون ختم نبوت ببینه غیر از اون که جهاد بررسی است اما در خندق شرکت و و مشورت بده و ایله آخر از اون فزیلاتایی که سلمان فارسی داره. بیستو دومین حدیث امام الترمذی رحمه الله و اسکنا فسیح الجناه میگوید حدثنا محمد بنو بشار قال حدثنا بشرو بنو الواضح قال حدثنا ابو عقيل الدورقی قال انا بنظرة العوقي قال سألت ابو سعید الخضری رضی الله عنه عن خاتم رسول الله صل الله و عسلمی خاتم النبوه فقال كان في ظهری بضعت ناشزه. این حدیث آلبانی رحمه الله میگه اسنادش خوبه اسنادش خویه. نیاز اسنادی روایت. رجال اسنادش زعیف نیست. رابیانی این حدیث. ابو نظره عواقی عواق. بعض جا تحسیب شده عوفش شده اشتباس عواقیه عواق. یک جویه شهر روستایی در کنار بسره در عراق. ابو نظری انتابعی سؤال میپرسه از ابو سعید خودری رضی الله عنه میگه منشانی نبوت. شانه چیه؟ چطور بود؟ یعنی قال ابو سعیدی خود كان في فی ظهری رؤی الرسول الله شانه الرسول سلم بضعه بضعه یعنی قطعه من اللحم تکه بود بضعه ناشزه یعنی بارزه قطعه گشتی بود بارز گشتی بر روی دوش و شانه الرسول الله وسلم صلی اللہ علیه و سلم. روی الله صلی اللہ علیه وسلم دوش رؤی دوش الرسول الله عليه وسلم يعني صاف نبود هم بار نبود با و بلکه یه قدهی که برامدگی داشت مشخص بود روی دوش رسول الله صلی اللہ علیه که گوشتی که گفتیم در حادث ما داشتیم یکتی که گوشتی به اندازه تخم یا تخم کبوتر که دور برش هم مو هست هم خال هست که الله در حادث بعدی خواهد اومد بیست و حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری قال زید عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات من حديث اسد اسحمي مسلم يكذا احاديث الزيباي اين باب بحث نشونه اصحابي در زمنش اين قد درس اين قد عبره اين قد فائده است عبد الله بن سرجس رضي الله عنه صحابي عبد الله بن سرجس رضي العين أتيت الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابي هما منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم کنار رسول الله حسين دور بريش اصحابش رضوان الله عليه اجمعين فدرت كذا من خلفه بولند شدم رفتم پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم از وسط جمع رفتم پشت سرش حالا خودش بهشون میگه اینطوری بلند شدم رفتم میره پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونه که چرا رفته پشت سرش زمانی که بلند میشم پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم فالقردع عن ظهره رسول الله صلی الله علیه و سلم لباس و که روی دوشش بود را که که نشانه نبوت را ببینه اون ردا شانه مبارکشون برای عبدالله بن سرجس مشخص بشه رضی الله عنه چون کنشگاه بود که ببینه این نشانه نبوبت را میگه خودش عبدالله بن سرجس فرائی تو موضع الخاتم على کتفه فرائی تو موضع الخاتم اونجای نشانه ختم نبوبت نشانه نبوبت را دیدم میان دوتا شانه هاش میان دوتا شانه که گفتیم به طرف شانه چپ نزید ترم بوده مثل الجمعی مثل الجمع جمع یک مش بهش جمع اگر قبلن ندوشیم اندازه تخم کبودل اینجوری اینجا چرا آمده مثل یک موچی طوروس یا سلام تمباله بود بخونیم تا بدونیم که منظورش چیه مقصودش چیه؟ مثل الجمع مثل الجمعی مثل یک موچی یک قبضه زید است انگشته با هم دیگه جمع بشن تو یک دست یک موچی داره اون جایی که ها را میگه اون جایگی که درش اون نشانه نبوتته نه اون نشانه نبوت خودش یک قسمتی از بدن بسوس سلام به اندازه یک موچ یک نشانه ای بود خب این يكما تشيه كيف حدومت يقول فنظرت إلى خاتم النبوة نقول نقول كادم بين كتفي ميانا دوتشاني رسول الله سلام هذا صحيح مسلم وين هذا عند ناغض كتفه اليسرى جمعة عند ناغض ناغض السخونية زير دوش يكو السخونية زير دوش السخونة باريكة رقيقية نوزوكية میگه زیر اون دوش، یک کمی زیر دوش نزدیک اون استخونه که روی دوشه زیر دوشه عند ناغر كتفه کنار شانه چپش یعنی به سمت چپ اون نشانه تر بود بین دو تا هاش منظور این نیست که دقیقا وسط بوده نه به طرف چپ بیشتر بوده حدیث صحیح مسلم علیه علیه الا قسمت که زیر دوش تقریبا واقع میشه و نزدیک اون برآمدگی اون استخونه که روی دوشه عل خیلانون که در این هم اومده در سای مسل هم هست که امثال فعلالیل خیلان جمعه خاله خال که میدونی چیه اون نشانه سیاه رگه.علیه خیلان که انها و در روات دیگر اومده حولها خیلان حولها خیلان دور بره اون نشانه چی بود؟ نشانه ها و خال هایی اون نشان بعد دورش خال های سیاه بود دوره برش. و در روایت ما قبلش مو بود که داشتیم مو و خالهای سیاه رنگ دوره بره چی؟ این موچه ها اون موچه که داره میگه که دیده اون اندازه یک موچ اون نشانه که دیده که داره کل اون اوصاف اون قسمتی که درش مهر نبوت واقع شده یا نشانه نبوت توش هست داره به اون وصف میکنه اندازه یک موچی وسطش یک قده یه تیخی که میگه که انها ثعلیل, ثعلیل یک یک تکه گوشت بهش میگن اندازه اینه خود یا همون تخم کبوتر بهش میگن تعلیل ای این نشانه نبوته و دور برشم نشانه های خال های از سیاه و که گفتیم غیر از اونم مقداری هم مو هم دور بر اون نشانه بود که این نشانه بارز بود میان این خال که مشخص بشه این یه چیز خاصیه این مهر نبوت یک تکه گوشتی برآمدگی داره سفید مایل به قرمزیه مثل پوست رسول الله صلی الله و یه چیز خاصیه و اینجا هم زمانی که رسول صلی الله علیه وسلم کنجکاویش رو میبینه رداش و قمیسش رو از دوشش بر میداره تا اینکه عبدالله ابن سرجس این نشانه نبوت رو ببینه و اینجا این تیوری برای ما داره وصم میکنه اون چیزی که با چشمان خودش دیده بعد میگه فراجعتو حتی استقبلتو برگشته روبروش نشستم اینیم روبروی رسول صلی الله علیه وسلم شرمنده شد حتی که دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاطره اینه که این کنچکا و این نشانه رو ببینه لباسش شد دارو برد تا ببینه شرمنده شد اومد روری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشست بعد از شرمندگی بیگه فقلتو غفر الله لکه یا رسول الله الله ترا بیا مرزد یا رسول الله تسبب شرمندگی این گفته ها یعنی مثلا وقتی که اومده شرمنده میشه میبینه که رسول الله سعی میکنه بشه ارزش میده، قیمت میده، جایگاه میده برای لباسش رو در ورد که نشانه رو ببینه. بعد کوف خفر الله لکه ک رسوله. یعنی این لیاقت و درخواست نیم مینه که برایش این کار انجام داده. بعد رسول الله سعی در جواهش میگه ولک. یعنی ترام الله بیا و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دعای را برایش میکنه. حضور الله من این روایت را در ناقله میکنه به کی؟ میگه دور برایشان. تو محسن نشستی روایات را در ناقله میکنه. یا یارانی برای خودش هم داره دارن میشنون ازش فقال القوم و کسانی که دارن ازش میشنون این چیزی که داره نقل میکنه فقال القوم استغفر لکه رسول الله توای مغبرت رسول الله برای تو کرد دارن غبطه میخورن برای تو رسول الله اصلا دعای مغبرت کرد و بخشش آمرزش کرد یعنی این پیروزی رو کسب کردی این سخنان رو رس از رسول الله اصلا بشنوی این دعا رو در حق تو بکنه کپتگی قرام اون جایگاهش اون مکانتش این جایگاه دعا هست در قلبمون بنیر خصوصا نسبت به دعای رسول الله صلی الله علیه و آله دوست تخدستو صحابه رسول الله صلی الله علیه و دعایش رو ایشرو می‌خواستن در حق خودش و این در حیات رسول الله صلی الله علیه دعو میکنه برای اصحاب یارانش بعد از اینجا زمانی که میشنوه از زبان اون کسانی که که دارن میشنون ازش می‌بینه که دارن غبت می میگه خب رسول الله صلی برای همه دائم مغفرت داره و الله ازش خواسته که دائم مغفرت بکنه ولکم برای شما هم دائم مغفرت هست یعنی شما هم غیبت نخورید الله جل و علا در قرآن میگوید برای رسول الله صلی الله علیه و سلم لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين. و استغفر لذنبک وللمؤمنین وللمؤمنات دائم مغفرت برای خودت بکن و برای مؤمنین و زنان مؤمن برای مردان مؤمن و زنان مؤمن انسبوبه دلدری داره بهشون میگه یعنی شما هم مشمول دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید یعنی در خاص برای من دعا کرده ولی شما هم مشمول این آیه و این سفارش الله جل و علا به مؤمنین هستید شما مشمول این سفارش الهی هستید به رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مسئله تو حاشیه بحث اعتقادی تو بحث استغفار رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب مغفرات کردن بخشش کردن آمرزیدن در حالی بود که رسول الله زنده بود یعنی خاص زمانی که رسول الله صلی الله علیه و زنده هست الله حی و پایدار و صفت کمال برای الله جل و اعلی که او الله و احد الله الصمد سمدیات بی عیب و نقص بودن کامل بودن فقط از آن الله و اون کسی که صمد بی نیازه بی نقص بی قاهر و قهار و غالب اون شخص است که مستحق عبادت و پرستش ولی اون کسی که مقهوره مغلوبه صمد نیست نیازمنده بی نیاز نیست بنده است میمیره بنده هست، گاهی میشنوه، گاهی نمیشنوه، میخوابه صفات نقصه این مستحق پرستش نیست، مستحق عبادات نیست مستحقش نیست که تو براش بندگی بکنی بندهی الله باید باشی که خالقته، دگارت که بیعیم و نقصه, نقصه الله جل و علا به پیغمبرش میگه اینکا میت صفات نقصی یا نقص ولی الله جی الله لا اله الا هو حی القیوم، حی قیومه، پایداره صفاتش کماله وقت اله همین یوسف علیه والسلام در زندان زمانی که تا زندانی در دعوت منده چه میگه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القحار ارباب متفرقون خیر خدایان متفرق بهترن ام الله الواحد القحار یا الله یگانه یک قهار یک قحار یعنی غالب مغلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم انکه میت تو باید بميري چرا چون مغلوبه کی غالبه؟ الله تعالیه علا که حیقیون الله هیچ وقت نمیخوابه لا تاخذ وسنت ولا نون تشورت میذال نمیخوابه ولی رسول الله صلی علیه و سلم چی میخوابه میمیره صفات نقصه. چون صفات نقص داره مستحق چی پرستش نیست عبادت نیست در حال حیاتش تو میتونی ازش بتلبی تقاضای دعایی بتلبی اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به این صحابی عبدالله بن سرجز بدون تلب و درخواست دعا میکنه دعای رسول الله صلی علیه و سلم بلکه بعد از حیاتش دیگه معجزه نداری ازش تقاضای دعا بکنی بغت راهمين دار حديث سليم دار صحيح بخاري حديثه ومني نعايشه رسول الله صلى الله عليه وسلم دهش سنة زباقيع بارمي مريض بلاند آخر حياته هو من نعايشه خیلی غصيم يخول فريضة رسول الله الله عليه وسلم ده الملازم وفاته رضي الله عنه ثمانية رضي الله عنه وارز شدان هو الله عنه قفتن خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذبهم ورقف نوازشش بكونه بفعل ما ين لو وانا حي فاست اخفرون لکی یعنی اگر این سردرد بشه که بمیری موردی ف. انا حی ولی منم زنده باشم برایت دعای استخبار میکنم برای طلب مغفرت میکنم منم زنده باشم یعنی اگر من بمیرم برایت دعایی نمیتونم بکنم واضح یا نه من اگر زنده باشم برایت د... تقاضا میکنم مغفرت میکنم از اون واجله ولی یعنی اگر من مرده باشم که نمیتونم برات دعا بکنم و در دنبال هم حدیث میگه فاستغفر لکی و ادعو لکی عبارتهم مثلا مغفرت میکنم هم دعا برات میکنم به اد رسول الله صلی صل الله عليه و میگ ماوارسسه منم سر دار دردارنی منم سرم درد میکنه اونو عیش میگه و تو کلیه داغ به دمت اون اینجا میگه مثل کسی که داغ دیده هست ب چش ازش گرفته شده ی والله اننی لاعدون که حب و موتی میگگهش می کنم که تو مرگ من رو دوست دار داری یعنی که میخوای من بمیرم که بری با بقیه هم سالت بهیرتش برمیخور یاری انگار که مثلا تو چشم زار مرگم یعنی میینی چ اصبت س بهش گفت حالگر سرد داری اللا مردی منم خودم کفنت میکنم برات لا میکنن رسول الله صلی علیه از باب شوخی و مزاح دردش رنجش رو کم بکنه یعنی هرچند که خود گفتم رسول الله صلی الله علیه و آله اونجا رنجش داشتن یعنی خودی رسول الله صلی الله سردرد داشتن تب داشتن مریض بودن پس رسول الله صلی الله علیه و در حال حیاتشون هست که اجازه دعا کردن رو دارن در حال حیاتشون میتونن ولی در مماتشون مرگشون بعد از وفاتشون بعد از دنیا رفتنشون دیگه این اجازه ای را ندارن فقط در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلام الله جل و علا فرشتگان گذاشته بر روی زمین که سلام و درود امتام صلوات و سلام امتم را به من ابلاغ بکنن به من ابلاغ بکنن فرشتگانی ملائکه‌ای مسخره که به من در سرای برزخی سلام و سلوات را ابلاغ بکنن نه اینکه شما بگید مستخیم سر قبر پیغمبر علیه صلوات و سلام بگید که من اومدم اینجا را سلام بکنم و اینجا مستخیم رسول صلوات سلام, سلام ما را میشنوه نه اعتقاد اهل سنت و جماعت بر اینه که مردگان نمیشنون این نه سایه قرآن فرمودی الله جل و علیه اِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَ گفت والله جل وعلا بر الله صلی الله علیه تو نمیتونی صداات رو مرده گان بشنوانی رسول الله صلی و, و در قران میگه اما انت بمسمع من فی القبور تو نمیتونی صداات اون کسی که در قبره بشنوانی حالا اینکه در جنگ بدر در اون گودالی که اجساد مشرکین انداختن اون معجزه بوده امام شافعی رحم الله میگه میگه دلیل نمیده که مردگان گان بشنون و این هم نزد علماء احناف هست هم نزد ما شافعی رحمه الله و بزرگان عییم شافعی اینکه مردگان نمیشنونن خصوصا در فقه میاره امام شافعی مثلا شخصی اگر قسم خورد که من برم مثلا فلان شهر تو فلان شهر مثلا با فلان شخص صلح بکنم حرف بزنم رفتم مرده هست سر قبرش میتونم برم بگم که امام اومدم صلح بکنم باهاش حرف بزنم امام شافعی میگه رحم الله نه چرا چون میگه مرده نمیشنوه قسم گیر شدی تو کفاره قسم بگردنت چرا چون مرده دیگه نمیشنوه خب اینا ستفقه هم شوافه و هم نزد احناف این دو تا که حالا تو ایران خودمون داریم تو بین خودمون فارسی زبانها حنابل در تو فارسی زبانها خیلی کمه اما مالکی ها, با خبی ها هم دیگه. که دیگه اصولا نداریم خب این توفقه ما تو عقیدام همینه دیگه وقتی که داره بهمون میگه ما شافعی رحمه الله مورد نمیشنه دیگه واضحه حالا مثلا بعضی تو شبهه تو ذهن نشه پس چرا قبر رسول الله صلی الله علیه گفتن السلام علیکم الای القبور سلام دعاس میگفت تو تحیات میگه نمیگه سلام علی و علی عباد الله الصالحین سلام دعاس باید دلیل نمیشه که تو آیه قرآن را رد بکنی آیه قرآن صریحه و ما انت بمسمع من في القبور و ما انت تنمتونید صدات رب نشونونی به کسانی که در قبر سر میبرن مردهن از دنیا رفتن حالا این شبهه ای که در اذهان مطرح میشه فرمودید الله جل وعلا و علا ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم اضلموا انفسهم نگفت اذا ظلموا انفسهم ولو انهم اضلموا ای ظرف زمانیه ماضی گذشته است اذا مستقبل آینده است یعنی تو پیغمبر ای کسانی گناه کردن در حیات خودت ما قبل یعنی گناهانی دارن اومدن نزد برای اینکه براشون طلب آمرزش بکنی اومدن پیشت ظلموا هم یعنی گناه کردن تو هم هستی اومدن او که فاستغفروا الله, اومدن الله و استغفار کردن و سغفر الله الرسول و رسول الله برایشون الله و طلب میکنه خب پس اولین مطلب این این از ظرف زمانی گذشته است، نه آینده. برای آینده نیست که اگر در آینده شما گناه کردید. نه. کسانی که گناه کردن زمان نزول آیه. اومدن پیش رسول الله صلی وسلم. رسول الله صلی حق طلب و درخواست آمرزش برشون از الله داره. دوم این که این آیه که خیلی ها بهش سناد می یه قصیه را براشم حتی که در بعض از کتابی توی تفسیر اومده علی سنتم روایت کردن یک قصه هم کنارش میگذارن یک عربی جاهلی میاد کنار قبر پیغمبر و فلان و یک تقاضایی داره و میاد پیش پیغمبر میگه طلب رو دارم و دعای برام بکن و فلان دعاشم اجابت میشه حالا این قصه و داستانی که عربیه معلوم نیست کیه از مجهول اصلا خب بعضی ها یدک میکشن این روایت که اصلا دروغه این روایت که صحت نداره و راویش هم که مشخص نیست کیه؟ خود این شخصی که اصلا اومده سر قبل کیه؟ هیچ مشخصی نه صحابیه نه تابعیه یک شرد فردی اومده چون این آیه را شنیده اومده کنار قبر پیغمبر و دعاش سیابت شده و تو خوابش اومده بعد و فلانو. آخر میگه میشه هر کسی برای خودش بیاد مثلا یک افسانه بسازه بگه آقا من تو خواب دیدم چون تو خواب و من اومده و چون اومده مثلا اون چیزی که خواستم استجابت شده پس در نتیجه پس این کارم درسته این که همون حرف باشه این شد و شکیچ چرا دست نکشیدن از شرکشون نسبت به اون بوتا و اون مردگانی که میپرسیدنشون آنها را صدا میزنن چرا دست نکشیدن آن چی بود ما از این بوتا خواستیم بهمون به دادن یعنی چیزی که خواستن موافق شده با سجاوات الله جل وعلا یعنی موافقت داشته من الان خواستم کنار این بود. الله هم خواسته که من اینجا سن قحتی خوشحالی بارون نیست اومدم دست به التماس این بوت یا این مرده یهو بارون اومد الله راه به حالش میکنه یا موافق بوده با تقدیر کونی الله جل وعلا مصادف بوده این دعای من الان چون اینجا بارون اومده دلیلی بر اینه که دایما سجاوات شده نه الان چون دعای این عربه اجابت شده دلیلی بر نیست که کارش درست رفت سر قبر پیغمبر علیه الصلاه و سلام. خصوصا که گفتیم چی شأن نزول این آیه چیه؟ منافقینه، منافقین که راضی نبودن به حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، رفتین نزد کعبه اشرف، طاغوتی بود، می‌رفتن برای تحاکم و حکم، برای اینکه قضاوت بکنه، قاضی بود، می‌رفتن پیشش حکم بکنه. این منافقین حکم رسول الله صلی الله علیه و قبول نداشتن، رفتن پیش کعبه اشرف، الله داره ملامتشون میکنه جا برای توبه شما هست شما که این کارو پیش کعب، اومدید نزد رسول الله صلی میتونه برای شما طلباب مرزش بکنه در مقابل این گناهتون سبب نزوله ما وقتی بدون سبب نزولش میگه تو منافقی بر خود داره حکم نفاق میدیم مگه آیه که در شأن منافقی نازل شده چرا تعمیمیش میدی به هر شخصی به هر فردی شعن نزولش خاصه و با... هیچ یک از صحابه اینجوری کاری نکردن نه منکنار قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم آله نتابعین هیچ کسی نیومده شما در نظر بگی رسول الله صلی الله گاهی دیدی دید سر قبر پیغمبری بره اس پیغمبران سابق یعنی که پیغمبرای گذشته بودن از موسی، عیسی، بر سر قبری پیغمبران متوسل بشه به اون قبر و اون مرده چرا کاری که پیغمبران الهی نکرد؟ نه رسول الله صلی الله علیه و آله و نه هم ابراهیم، نه موسی، نه عیسی هیچ از پیغمبرا شما ندارید که در زمانشون مزاری، زیارتگاهی، قبری مقامی باشه مثلا بران اونجا برای توسل جستن و برای راز و نیاز و عبادت و تضرع نبوده فقط بیتو الله جل و علا بوده. مسجد الحرام بوده و کعبی اللہ جل و علا. اونجا می اومدن برای تواف کردن الله. در خانه الله جل و علا. و در حدیث داریم که یاد شده که درسته گذشته. رسول الله صلی اللہ علیہ میگه در منا اینجا هفتات تن از پیغمبران الهی ایسا که یکی از اونها میگه موسی بعد میگه ابراهیم پیغمبران اونجا جمع شدن. سر قبر کسی نه نمیرفتن نبوده که بره و اگر هم می‌رفتن برای دعا برای بود. سر اس اس سر که یک قبرستون می‌رفتن برای اینکه دعایی به اونها بکنه میرفت و برای اینکه دل خودش هم نرم بشه. میگه الا فزور الخبوره فإنه تذكركم الاخره به قبرستون که شما را به یاد اخرت میندازه. این احادیث که در این باب اومده بود، خلاصه‌ای بود از اون نشانه نبوت که قطعه گوشت قدمانند. رنگ پوست رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمده به اندازه تخم کبوتری یا تخم کپکی دور برش خالهایی و موهایی بود به اندازه یک مچ و سیاه نبود سبز نبود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روش نوشته نشد و نه چیزی دیگری یک خدی بود سفید رنگ به رنگ پوست رسول الله صلی الله علیه و سلم که مایل به قرمزی بود و برآمده بود روی شانه ی چپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میان دوتا شانه هاش بری خوب سمت چپ نزدیک تر بود این خلاصه ای این نشانه ای نبوت و ختم نبوت سبحانکاللہ سبحان الله بحمده صلی اللہ بحمد. علیہ محمد و علیہ محمد